جغرانی ازیزو خوشویزد، سلطان لبیت خوش حالی لباسی پنجانوی خان نویک تی بیچشتی مجموعه‌های جاری مکریانی هتی نو خزمتان فرمون لگل من هجاری مکریانی پاش اوی کلموسکو دا گرته او دیت و عراق پاش اوی که کارکی دستکوه لاشور شواپی را دگینن که با اوی روژنامه درکا وزل ایشکی خوی بینه هجاریش امای بدل دبیو خدمت دکا با او, او روژنامه با شورش در بکد پاش اوی پینج ماری دردکا روژنامه دادکره بلام برای او بری کارکی رگنه دا هجار دستکارکی خلگره هربویا لهمان کاده هر د کاتی که روشنامکت دا دخری دا گیره تو دلی روشی کچو مبارگی خباد زبیحی لدرگاوتی ملا بو هاتوی خو روشنامکت نم آوا لوی دا تاسیک بردمی آوا لدلی خوم داوتم جابس نبو جمال بابن نیهشت استعفا بدم یستا چیم کرده سبی چو ما اداره ساعت چواری پاش نوار رو هر لویمم جمال بابن هد ویتی او بنا بو رو بوم جره وتی من خون دستم بکارو حقوق حزبانو و سوتاوه، چا کت نجاد بو؟ بده خواه جمعرکانی کردستانه کم نیه، بلان دامتقه کانی لبو کردستان دا کرده و دو بست شعریشم لروجنامه دنگی کرد بلاو کرده و که کن بناوی خالی دا دستم و فوتا. لسر داوی یکی فیرکرانی سلیمانی مقاله که شازده رو پریم لسرباری ادبی عدبی کردی و شعری در این در شایران تازه او چند جنوی که جانانم بود اویش به مجله روناحیده که خون بسر رادگیشتم کرد بلا مقال هرائی که ناید و قانعه او زور کسی لسرمن یان کرده او جنو درکان کرده کری نیوزر با من رمزان برزنی چوبوا برزان قاسم زوری زوری با حزب هینا نداهرس روزنامې خبرت لولاته کانی جنوب ده بل او اندامانی و اندامانی پارټي لرګوبانن ازیت دکرن روزنامې خبرت شکایت دنوسی کمتری در راایه حزب قراری دابو به جولیک دغل دولتي تیک نه داو ته تیار و ساز و آماده ਕਰਨبه پښوی پشوی نه به حزب شویج لبغدا او کلو کافین مابو باسی لی و خو کتبون ان روزنبو یکودانن لترور نکن هر اوندان به دست و مابو ل روزنامه کایندا د انوسی چون واده به همون روح شهید ادین سیاست امام ماکسستان پیو کشتنی و کلبیری چوب يتول وقت د صلاحدارین چی اندکل ل سر خو خلق دیهات بعد ندانی شوعکان کله کردستان دا هر خوئن حساب بونو پارتی زور بو زورین ل خلق سید صادق گرت که شیخ قانی ايش برکو تو خبر یاندا می برزنی لمال نابو راجی که هتاه هر سلامی کردو دانش و تن قانع جراوه دز بجهسته شو ولای صالح عبدی رئیس ستاد وتوی یان ایسته منش حبس دکن یان قانع برددن قانع یان هنوا لجیتی سپاس دل با خو علم حبسه همو راج لاوکان پرتقال و موزی اند دامی هاي هجر تو نت هشتار بخوم قسم لا لا سار سیرکن دنیا بو بو بوتری کی عجایب دلی حالی نده گرد هیچ کس به هنرمندو آزا بینن. با نمونا مندال ایکی پولی پیانجمی سرطایی بناوی فیصل شعلان خلکی شاری کود لسر تلفزیون نیشند را کمیش که وک کمپیوتر جمعری لیگ زور تاجر به تلفون دیاریان بودانارد که کورا بیواجنه که فقیر بو قرار وابو چنشوی تریج ل و امتحان بکره لسبه او رو جوا نوی نما قاسم بغیلی پی برزانی که ها تواوتی من بسر بازه که خود حساب که قاسم سرده ایزانی برزانی درو نکو هاوکاری کی پالوانی بیوینه ده بی. هر وقت شر شیخ غشید و هره شوافی بولنو برد بلام احساساتی خلق بنانبر بر برزانی و بجی بجی دست جمعی قاسمی پرکردبو کرده بو لرکوکی نه بودرفت دگر را که او درکر لسر ری خوی لابره برزانی زور خاکی و خو پرستی خوپرستی نکردبو هر لون رجوه که هاتوه لهمو کوبو نو یکده زور لوانه قلز بو دکن. جارک که تاریفیده کن. جاریک لججن یکده که به های حت نوی لسالونی گل قاع شعب جیرابو له لحوالان حزب باوتاره تارکو من به شعریک باسی حت نوی اومان کردبو بو به تاریفه و گوتین گوتویا هر دوشان تم بیده کم خوتانی مدن. راست چوینا بردستی زوری لومه کردینو بخیر وزاره. اشعاری زاباری زور لم یج سال دوجمنی سرسختی برزن هرچند کیچه محمود اغای مزنیان جنی بارزانی و دایکی کاک مسعود برزانیہ بلاندی سن همیشت جهات هربوا لا شر بارزنو دولت لا سال 1945 بارزانی حوالی به با دوجمن فروشت قاسم لبنوت چکو پولی بوزیه با باریکان نرد که به بارزن حل روشن بو ججن اکتبر بارزانی دگەل چن وزیر و پیو معقول عراقی بموسکو دعوت کرا لحت نوه قاسم گته بوی بیستون ما غیبتی منت کردوا برزنی و تبوی هست دکم اوی بوی جرائه و بیتر بروم چون که من لبیر نبوه بچاکش باست بکم هر نوی توم و بیر نه هتوا جاریک با قاسمی و تبو تو لخو تو دو ملیون و نیو دینر به شیخ زوفر بخشی گلی عرق عراق ها او ترزرفتر و قسانه قاسمی تاوشی تو هر کردوا چونی لکول خوی که تو ملین شراح و دز دریجیب بارزان دکرد. مله مصطفی ماوی قبوله بارزان بو لمبې در د دولت زوري تشغله بو پارتي نه برای راجنامه دخره و جلال خوئن له بغداد شردوه بلمکر حزب پک نکود حزب شوی دنی فلاحانی سلیمانی دا کډی مالیاتي زوی خوبشندنه کوي زانی مانوکه حزب پارتی لاسولیمانی سره کاتی خوب شندرانی کردو هاتون ريغي دربندي خان انګرتو بو ته تقو پیاو خو جراو حزب خوب شندر قدر یک پاش او شکانه نوریشاویس هات بغداد کللان حزب و وتویج د قاسم کا د عبدالله عبد الله کانی مارانی چوینلای چون من بیست پختکی د جرمو به هزاران ور زیرو خاون ملک بچکو کوبونو د جی باجی زوی شعاریان دد حزب هرچن بریری د ابو خویتوشی توشی شرنکه مله مصطفیش هرگیز به شر د سپیکردن راضی نه بو من اگر امه سرکړدایتی او ګله کومه جیا حزب شوئد دیباتو تو یم به یک جریش کز خوین ناچر خو من لیکرت به صاحب کچی هر د گل و قوم و پیو کوجره هر چی اغا او رایتن هر کس بهونه د زیګای خو یانو غیبون هفته کس اندامي پارټی نبه ل بو بزور بمل منده هد بیست موا که شویش کنکا دوان لحوالان حزب بسواری جیب بدشت سلیمانی دا گرابون جوینین بمله مصطفى دابو و تو بوین خویل بازان منگی پیان ست دینار وردگریو یمی فروشت ادیبو چی نای شرب که قاسم حلی بدرفزانی لنخافل برزانی بمباران کرد با امری شیخ احمد برزانی لدولت را پاری همه با هم سیاسات و پنجا پرچه چکی کونی لسه تیرو پینجتیرو کوکوشی جنگایو بدست برزانیان او بو. ملا موک اگری بر قدرتی کوتاییانی دوشمن. روشنبو ملبندگ ازاد نکا. روشنبو ستان اسیرو تفنگو توپ نگری. هرکی کی شیخ رشیدو اشعایری زباری لولاته راکرد ولاتی زاخو دوهوک برادوستو بالاکاتی دشت بیتوینی خسته ده هرچی پولیس کرده د لو کوردوستانه به هزاران بچو همو کلو پلورایان کردو چون پنای بارزنی لهو کوردوستانه همیشه دوکاو دا بو توپ باران بو تانکشکان بو بمباران تیاران بو تنانت روج قاسم داوی جوري مشکله روسیه کردبو که اگر به ساعت نم حالم شره لرمانستان و با آسمانی ترکیه دا باید نردو لبرنبرت تو طویی ترکیه دا ازریان خواستوا. شرحال جرسه من هر له بغداد مامو کریم هنین بو پارټی د کړد یو لوک رانم وتیان دوري سفارت مصر هموي بجاسوزګی راوه د مانوی سفیر ببنینو رګانیه وتم من دچم اریزه کم که سیکه بستم رادیو قاهره ګوندی فارسی دوی. اگر حقوقی باشم بدانی آمادم. نامم نامو پوشه کوا لدرګه سفارت پرسیان بود بوده اریزه نشنده سکرټری یو کم سفیرم دی لازمان بازنیو رامګن اگر ناصر کاری کی وپ قاسم مالک کولکاتا و تو زک شک کی دجی ټانک و فروکه ایران شر دکینو او به لپیمانی له توشی بغداد چوار جاری تریش هاتو چوم کرد هر وتیان به ناصر را دګینین داوی توفیق تام بودکين هیڅ الیشین نبو جریک لو جران دبو بتما مالی وابستې نظامی له امارت یک بود دمزانی سراي دارکه جاسوسی قاسم چوملای سراي پی موت سلام مام سبب کی مصری دلین لیره من فقیرم عکس باش تو توپو لکینه دومی بومبست انا سرایداریش چنجنیو کی ترو تازه به مصر و ناصر دا رويشتو هتووتی ابرون برت برو پولی خواتی لیور گراوا کابرا سیر بو جریلو جرلنی سفرت مصر احمد توفیق شم د گلبو ک باسی دکم ل اداره کد بعسی و پارتی هبون بلمکس خبری لکتر نه نشری هر سیک لاد در همو همون، همون پیک و نیوان من خوش بو. شرط شکش من ندا کرد. فرمانی گرتی فواد اسکاری نیوی باسی در چبو خویش شد دوام لبرد ریکی کرد بیبینم. باوری پیم هات بو. چون لمالک دیتم، وتم فواد تو اسی کسبیر نه بل مالا کرد خود شرد بیا تو. ورم مال من. زور سپاسی کرد. گوتی ایرشم باشه؟ عبید الله کره قبری مل Mustafa خویش شد توشی کابراهیش هولریبوم کمالی ل بغدادو کارمند اداره مالی بود. بنایی عبدالوحد. زود القلم ل کردعتی دا و تی حس دکم عبید بیات معلومن. کس فکری نکه دور ل هم وشته. بسیاد عزیز موت عبید و من نایم. دو هواگلم هیا بقان بچن. چونی ولای کابراه کزانی عبید نای و تی معلومن ل هم وشینان خرابتره. همیشه پولی سنی هی ل کولانکم من دایه. آریون آدم. شیرک دوربین و فلاشم هم حلقرد دکان عزیز شمزینی چون مالک عبید ل مدنیت و السلام که عکسی با بگرمو کرد تا کی سختی با سازکنون ل بغداد درشه عکس میرد هاتم روم رو نیم شیرک ل دیوار کو داروونت حسار گراموا وتم پیترن زن روا خواتن خلاص کن بیان برشاود دوانی زگزل بترسن با دیواری کی برز حسر حلقرن یک بچه تسرشانی آویترول ل پربر بنوا به هنگ څل دیوار قائم کناوه بز میوان قط نه دیوه لبر پکنین هوشم نه مابو بناه می کار حسن من د چمدر بهانیک دګرمو د گل خابره بشردیمه توند ملي دګرم ایولو در راکن بو اوشرات چمدر سره پولیس پشیلیک راجبو لس دیوار ماتي دابو حت مو وتم نخیر زولن چاریه دیسه نیم ساعتک او مشقم پی کردنو پاشان راستې کم پیګوتن داسی زو شرو دربون زو نه شو اتیور دکړت زوري انقله کردان بو دولت پی بلبس نه دکړن شوانه سردر کی معنی کردانین سور دکړت یعنی دبه کوجرن درکی امش سوري بر چندین شو زور سوا پاس معلوم دغرتو لسرهست بم تفنگه کی روم له مراد رازماوری ورګرتبو لبن سری خوم دادنه روج یک لا پیدا بوتی خلقی ترکیم، لما لحظه که ادریسی توی دومه کبیم یریه کرکو؟ ریگه زور سخت بو، هرکس لبغده برو کردستان روی با لچنجه دیان پشکنی، کارتی شناس نایی دبو پی بی، اکسم بو گرد بخطی خوم کارتی شناساییم بونوسی، موری کرخانی خشت سازیم کل لابو بولی دا، امزای رئیسی کرخانم کردو دامی، رویشت، دوی اووتم، آی بچاره، خو من هر بخته امضای خو و امضای رئیس کارخانه منوسیوه کده بو امضای رئیس بمراکب کسک بئو لختي ناو کارت جواز بئ یخین دیگرن پش ناو یک کورکنه یوسف بو هاتووتی هو ی لو کارت تی تو بخواشتی چکه هر دی تو یانو تو یانه برو ل کرکو کو چوملای بارزانی و تم تفنگ مدنی و اگر هجر بود بنو سید ددمه دای بون بنو سبب چمو ناسم ماتوانم ها اول سیاه دینار رو بچوه سوریه. ل سوریه و نامی سپاسی نو سیبو بو او کارت باشد. ک ل شرکانی دست هرکود. اندامانو حزب ل لیوری سلیمانی و لیرش بو جانو. بچک و دعانتشیاو شرهمو ولاتیگرتو. کسانی که ناصرعبون ل بغداد ما بناو کار ل بغداد زور باش بری ودشو. من لنجانم ل کردکانی اداره کرده کدرو. خبر یکم ها بعدم نرد جاره گوتیان کاملک لکونه جنرالو پیاو ماقولانی بغداد پیامی کی گرینگیان با حزب های نویرن به نامه بینوسن دا به یک توایق سکانی بزیاد و کم لبیر بیو بشوی نیخوی تو توبو او کار باشی پیامم ورگرتو چو مکرکوک. کوک زبیحی مسئولی کر کوک بو لوی نوسی منو نردی چمی ریزن با مکتبی سیاسی با سبی اواره جوابی هر گئی موه گوتیان رواجنامت مخویندوه توا منشووتم نه چی تی دایا وتیان لزمان تو نسراوا پی پیه پیه که پارتی پرتی پیه استعمار ندج جمهورین من حاشه اندیدکم منشووتم های نبی سبه برادرانم دیتوا جوابکم گیاهن وتیان او بختانه بوچن کسی که دیکن نسراوا دتوانی انکاری بکی چوی نر یک گوتی بله بود دانوسیم بلند بیابانوسیم من مخالف جمهوری قاسمم و تم بختانه کمپیک راوا ویزدانم نرازیه بلن اگر عدروی بانوسیم همیشه ویزدانم ازعبن داده این کاری نکم دو بیانی بیانی که چابک رهیز بیپارتی نشان داد کنوسیبی دوبلت به حیل سازیده وابی لک درب که نسرایی هزار راس نیو لود مده اول سفر دبوا کاری حزبی را پرندوا و تیان بلا ویده منشوتم، آی دغیلا، اگر ده تانه یه لبغداب مینمو فایده اکم ها او مکن، چون که هر امرو دمگرین. پش چند ساله که دگل یک دوانه لحولانی حزب، نیوان نخوش بو بو، منجلای برزانی بوم، هر او پیا و مردانی که بیانکه نوسی بو، لروجنامه نورده نوسی بویان، هجار او سالتو توبی قاسم کردو، هر خایی نه، بله، سیاست خو خوبابی هبه، وی کی که امبختانی نوسیوه ساغم کرده و که ما توفیق و وردی شاعر بوا لیم پرسی که که وردی توبو واد کرده و قدری حاشای کرد پلام شاهیدم بو پیدا کرد که لوقتی نوسینده لوی بون وتم اگر هجار آب روی بچه و سوگ ببه من وقت شاعری جوری کرد نوبانگ پیدا دکم بزهکم حتی چون که دم نسی و دمزانی اقلی تو زهک پارسنگی دوه لی خوش بو مو بو ن یرانی عزیز و خۆشەویست شەیدیانی دنیای کتێب یرەدا و بەم شێوەیە دیێنە کۆتایی و نوی خێنەوەی کتێبی چشتی مجبوری هەژی مکریانی تا لە شەوێکی تروو لە بەشێکی تری خوێندنەوەی ئەم کتێبەدا پێێتان دەگەینەوە بەختەوە و سەر